و نافذ اجرا میکنم قال رجل لقد قسمنا انا وزوجتي اعمال البيت بیننا. هي تأمر و انفذ مر مردی گفت من و همسرم کارهای خونه رو بین خودمون تقسیم کردیم ایشون دستور میدن و من اجرا میکنم